بیستم و افکار نو زیر نظر رضا علومی شنواندگان عرجمند بحث امشب ما که در خدمت بای پرسول هشت و آیان دکتر حاتم و دکتر باغری انجام می شود در موضوع تحقیق است ارکان سلاسه تحقیق رو در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم و گفتیم پرسنل تحقیق یعنی افرادی که در این جریان تحقیق شرکت می کنند و یا به عبارت دیگر محققان عامل اساسی تحقیق هستند اما برای اینکه این محققان بتوانند یک برنامه مفید تحقیقی در خدمت جامعه و برای پیشرفت اجتماع تنظیم کنند شرط پیروزی آنان این است که عامل دومی وجود داشته باشد به نام موضوع تحقیق معین و مطالعه شده عامل سوم در عمر تحقیق روش تحقیق است ناگفته نماند که پرسونل تحقیق و موضوع تحقیق و روش تحقیق وقتی معین شد وسایل لازمند باید پرسونل تحقیق وقتی که وارد مرحله اقدام و می شود در ابتدای کار موضوع تحقیق رو معین کند بداند چه می خواهد در چه باری می سنجد و تحقیق می کند و به عبارت دیگر به چه کیفیت باید تحقیق خود رو در باری اون موضوع هدایت کند هدایت در امر تحقیق رهبری تحقیق سنجش طریقی که محقق می پیماید از عوامل اساسی تحقیق هستند موضوع تحقیق سی که ما امشب در بارش سخن خواهیم گفت. موضوع تحقیق در دانش گوناگون تفاوت می کند. در دانش پزشکی، در دانشهای ریاضی، در علوم طبیعی، در دانشهای اجتماعی و انسانی، تعیین موضوع تحقیق امریست که باید کاملا، با دقت و امان نظر کافی این موضوع عیان بشود تعیین موضوع رهبری تحقیق در جهت اون موضوع به خاطر یک استنتاج صحیح این هدف هر محققی است من از پروفسور هشتودی خواهش میکنم که درباره مخصوصا دانشهای ریاضی و اینکه تحقیق در مسائل مربوط به علوم دقیق به چه کیفیت است بیان مطلب بفرمایم از را می کنم اشاره شد موضوع تحقیق باید یه موضوعی باشه که برای خود محقق قلن به کلی آشکار و روشن باشه نه در یه امر مجهولی به تحقیق پردازه چون که به عنوان شاید یادم میاد در زمان سلطنت ناصر الدین شاه بود ویا یه کتابی به اسم توفت المرک سگزه بود جرزین ها می نوشته و یه چند صفه هم راجب جغرافی های جهندم. جایی که ندیده بوده ولی راجع به جغرافیای جهانم چند صفحه نوشته جالبه اگر تحقیق این باشه که موضوع امر مبهمی باشه این به جامعی جایی انجام. یعنی خود محقق باید بدونه در چه مطلبی میخواد بحث کنه و اون مطلب باید مفیدن باشه اینطوری اشاره کردن فرض کنید مثلا آمار موجوداتی رو از, از نوع فرض نوع پرزیور مثلا دام ها و اینا که مورد احتیاج زندگی انسانی برمیذارن آمارگیری میکنند ولی هیچ وقت کسی نرفته آمار روباهای جنگلهای مثلا آردن رو تحقیق کنه یا کسی تقریب نرفته ادده انکبوتهای توکیو رو مثلا مایگن کن و مورد استفاده نیست مورد احتیاج نیست بیشک چنان که در یکی از مجلات خارجی هم نوشته شده بود خب مسئله تغذیه و ازدیاد نفوس قطعای موجبی خواهد شد که یه روزی حیوانات غیر اهلی رو انسان بیاد مثل گاو و گوستند و غیر و خب البته اون زمان تحقیقات راجع به کیفیتات زندگی حیوانات وحشی در جنگل‌ها و آمارشون مورد احتیاج خواهد بود البته با تحقیق ولی در حال حاضر تحقیق در این مورد مورد اهمیتی نیست و از نظر علمی هم معجزه ایش هم نمی‌جواد باشه یعنی مطلب مطلب روشنی نیست چون کسی که فرض کنید می‌خواد آمار روباهای جنگل اردن رو بگیره می‌خواد از اون چه استفاده‌ای مسئله روشنی نیست در مسائل ریاضی البته مسئله امور ریاضی تحقیقات مجرد ریاضی به این معنی الانه از بین رفته اصل موضوع اینه که در شاید مثلا تا قرار 19 هم, هم اینطور بود که میپنداشتند وضع فعلی هر علمی نتیجه گذشته است چون که بیشتر اون بیان علی ف ها, ها، اینطوری است که میگن شرایط اولیه کیفیات آخری رو تعین خواهد کرد و در حال حاضر بنیان علم طوری است که نه تنها به گذشته خودش نگاه می‌کنه بلکه آینده را هم یعنی حتی در علوم مجرد مثل ریاضی محققی ریاضی متوجه اینه که سال‌های آینده و قرن‌های آینده چه مسائلی مطرح خواهد شد که بنیان‌بندی ریاضی اون الان باید انجام بگیره بنده برای مثال تحقیق ولتررا رو به عنوان مثال هست که مستمین مطلب رو به کلی در خوانجا و صحبت رو بیهوده اتاله نمیده تنازع بقا مسئله یا آکل و معکول که مطلبش که خود در طبیعت اصلا به طور کلی طور برای این بقای حیات روی چسب انرژی یه موجود زنده ای انسان یا حیوانات تغذیه میکنه حیوانات از نباتات نباتات هم به یه نوعی از زمین میگیرن می وسیله اون چغز کلروفیل انرژی موج فرابنفراورج آفتاب رو جذب میکنن انرژی شیمیایی آیا این مسئله مطرح میشه که اگر دو موجود مثل عنکبوت و مگس رو در نظر بگیریم و به یه نسبت معین هر روز یه عده‌ای از اینا رو بکشم آیا کدام یکی زود تمام میشه البته این ممکنه مدل بندی ریاضی برای این کار که بهش میگن مدل ریاضی تنازع بقا یا کوشش برای ادامه حیات ویتو را دانشمند ایتالیایی در چند سال بیش از ابایل بنیان ریاضی این مطلب رو ریخت بدون اینکه قبلا تجربه انجام گرفته باشه زیاده ذهن عادیش این صبر که مجالس سودتر تمام خواهد شد زیادی یه مقدار ما میکشیم درست که انکوتر رو میکشیم. و در مقابل انکوت هم یه دست مجسه ولی تئوری او نشان داد که نخیر به عکس انکبوس روپتر میگیره. زیاد مجس رو ما میکشیم قضای او رو از بین میبلید بنابراین اون مقدار کافی تغزییه پیدان خواهد. داد. بعد این رو مرحله تجربه و آزمایش گذاشتن در خلیج آدریاتیک از دو ماهی که یکی آکل او دیگری معکول و تجربه نشان داد که نظرایی ویلتو را درست. در تاحلیر در ریاضی، همیشه ناظر است که برای یه فینومنی مدل ریاضی درست کنیم و بنیان سخلیاتی ریاضی اموزه فقط ایده زیرا که نگران آینده است و در علوم تجربی هم این مورد استفاده دار حتی در خود علوم پزشکی کوشش برای اینکه های ریاضی درست بشه آیدکتوراتم اجازه هست سلام کنم جناب علی دونبالی صحبت میزام بفرم به نظر من موضوع تحقیق معمولا بر دو نوعه یکی موضوعی است که مورد نظر شخص محققه یعنی شخص محقق رأساً اقدام میکنه یا اینکه آرزو میکنه که اقدام بکنه که در با اون باره تحقیق بکنه و موضوع دوم موضوعی که اجتماع عام از اجتماع کلی یعنی یک کشوری به عهده محقق یا محققین میگذاره یا یک دستگاه اهم از دولتی یا خصوصی بر حسب نیازی که به اون موضوع باشه به احده محقق یا محققین میگذارن اما موضوعی که مورد نظر شخص محققه معمولا در رشته تخصص خودشه چون در اون باره تمامی جزیاتی که تا اون موقع کشف شده میدونه و طبعا بر میخوره به اشکالاتی که حل نشده و حس میکنه که احتیاج داره در اون باره تحقیق بکنه و ببینه خودش میتونه اون گره را که تا اون وقت کسی باز نکرده باز بکنه یا نکنه مثلا یک شخص جراحی که راجب سرطان خیلی کار کرده باشه ممکنه فکر بکنه که چطور سرطان در همه جای بدن کم و بیش پیدا میشه و مثلا در روده دوازده پیدا نمیشه در این باره میگه که خب شاید یک ترشاهاتی در خود دوازده باشه شاید نسچ دوازدهه یک اثری داشته باشه که سلولای سرطان را از بین ببریم و اون وقت حس میکنه که دلش میخواد در این باره تحقیق بکنی ممکنه بری و از روی حیوانات حیوانات کوچیک یا بزرگ فرمانی کنی و شروع کنه با تزریق سلول های سرطانی در اون حیوانی که انتخاب کرده سعی بکنه در نقاط مختلف بدنش این سلول رو تزریق بکنه بین چه اثر رو و چه راکشن نشون میده و بعدا مثلا شیره 12 رو بگیره بر اون قسمت بپاشه یا اینکه بریزه یا پیوندهایی از دوازدهه به اونجا بکنه یعنی به طور کلی اثراتی از 12 روی 12 پیدا بکنه که بتونه اون سرطان رو خونسا کنه یا بتونه بفهمه چه عاملی سبب شده که در اونجا سرطان ایجاد نشه یا مثلا بنده که جراح قلب هستم فکر میکنم که دریچه های قلبی که الان ساختن به اسم دریچه استار درسته که خیلی از مشکلات ما رو در امراض دریچه‌ای قلب حل کرده کم و بیش ولی باز هم اشکالات زیادی داره مثلا در ایچهی ای که الان هست به صورت یک سبد سیمیه که در درون بطن قلب قرار میگیره و هر ضربانی که میزنه درست مثل دهنهی که در دهنه اسبه قلب کاملا نمی تونه روی اون سبد جمع بشه و طبعا مقداری خوند همیشه در بطن قلب میمونه و به تدریج سبب گشات شدن قلب میشه از این گذشته در هر ذربانی این سبب سیمی به دیواره بین دوبتن فشار میاره و سبب قطع اون رشته عصبی یا رشته عزولانی که سبب انتقال امواج الکتریکی قلب میشه میشه و طبعا بعد از مدتی امکان این داره که دیستوسیاسیون بیده کنه بین دهلیز و بعد یک قطع رابطه بشه پس من فکر میکنم که چطور بود که اگر ما میتونسیم یک دریچه درست کنیم که در دهلیز قرار بگیره و نه در بعد و میرم و مدل های مختلفی می سازم و شروع میکن روی سگ یا روی حیوانات دیگه امتحان کردن ببینم که واقعا می تونه کار بکنه همون کاری را که در بتن معش میخواستیم در دهریز بکنه یا نه و بینین ترتیب ما میبییم که یک تحقیق جامعه عمل به خود می پیوشی. یعنی بعد از مدتی که من روی سگ یک چگ را خودم ساختم امتحان کردم وگردم به مثبت رسید. سعی میکن که با نظر همکاران خودم روی انسان آزمایش بکنم و مطمئن باشم که این نتیجه بهتری میید ای دکتر این تحقیق مبتلی بر ابتکار شخصی تلقی میشه یا طبق برنامه تحقیق گروهی این بر برنامه شخصی یعنی من خودم حس کردم که به این موضوع علاقمند هستم یا این یه گرهی در کار منه یا این اشکالاتی که باید یه جوری برطرف بشه تحقیقات پاستور تحقیقات شخصی است یعنی... اون شخصا خودش بله. میدونست که این اشکالات هست میخواست بره دنبالش بگرده گویا اینکه معالان اجتماع هم ازش بهره مند میشه طبعا هر نوع تحقیق ولی در وهله اول شخص محقق این را میخواست ولی تحقیقات دیگری مثلا فرض کنیم کشور ما ایران حس میکنه که به پروتئین بیشتری احتیاج داره این دولت یا تحسیصات اجتماعی هستند که این نیاز رو واقعا درک میکنند به تحقیقات گروهی را؟ و طبعا بله می تشکیل میکنن می می دسته میبینن کی این موضوع اطلاع داره و از اونا دعوت به همکاری میکنن که تا این باره تحقیق بکنن و بتونن و اون موضوع رو حلواجی بکنن و, و پس در حقیقت دولت در این باره بایستی سعی بکنه بغیده من و بگرده اون محققین یا دانشمندانی را که گوشنشین میشند یا از اجتماع تقریبا رانده میشن در یه گوشه ای و کم کم عمرشون رو بیهوده پایون رسونن بایستی بگرده دنبال اینها و پیدا کنه و به اصرار و التماس دعوت بکنه از اونها و بخواد از اونها که برای کشورشون مفید باشه که موارد تحقیقات گروهی بشن و تحقیقاتشون جنبه ارگانیزه داشته باشه با یک سازمان منظمی و کیفیت همون طور پوشوش های علمی که در همه جا جنبی گروهی بیشتر به خودش گرفته هست بله. در این موارد هم از علم این شخصیت علمی او عشق او به تحقیق استفاده بشود برای یک کار تحقیق گروهی و دیگران بتوانند از این روش تحقیق او هم استفاده, استفاده بکنند برای دکتر باقری هستین که با طلبی داشتم بفرمایید آقای دکتر بنده تصور می‌کنم که به اون نظر آقای دکتر حاتمی راجع به موضوع تقسیم بندی تحقیق بتونم بیش از مطالب دیگه که گفته شده موافقت داشته باشم درباره این موضوع تحقیق به نظر من اون که برای یک محقق لازمه آزادیه یعنی به عبارت دیگه ما به محقق نمیتونیم و نباید بگیم که راجع به این موضوع شما حق دارید فکر کنید راجع به فلان موضوع حق ندارید فکر کنید بلکه وقتی که یک موضوع پیش آمد که ای شد برای محقق در ضمن کارش ذهن کافش متوجه اون موضوع شد این خودش میشه موضوع تحقیق مثلا فرض بفرمایید فلمینگ موقعی که دیدش در اون کشتی که تهیه کرده یک اتفاق به خصوصی رخ داده و باعث شده که اون میکروبها رشد نکنن این توجه نداشت به اینکه نتایج این از لحاظ تجارتی و عملی و طبی چه خواهد بود بلکه این موضوع خودش براش جالب توجه بود که به دنبال این بره و تحقیق بکن منطقه این که دولت، دانشگاه ها، معسیسات تحقیقاتی و های خصوصی ممکنه از میون این تحقیقات یه دیرو انتخاب بکنند اون رو حمایت بکنند برای اینکه تصور میکنند که یک نتایجی که به درد سنت یا به درد اجتماع میخوره از اونها حاصل بشه. و جالب اینه که به نظر بنده اون تحقیقاتی که واقعا آثار بزرگ از لحاظ علمی و از لحاظ عملی داشته در اجتماع بیشتر اون تحقیقاتی بوده که ذهن کنچکا و محقق صحیح. بدون این که به نتایج عملیش نگاه بکنه متوجه شده بوده و به دنبال اونها رفته بود سوالی که ما میتونیم در اینجا مطرح بکنیم اینه که در هر یکی از این رشته های مختلف که ما باهاش سر و کار داریم به نظر میرسه که چه موضوعی معقولتر باشه چه موضوعی آقلانه باشه که دستگاه هایی که برای تحقیق درست شدند اونها رو تقویت بکنند و امکان به دست آوردن نتایج مثبتی که امروز به درد اجتماع ما بخوره در کدوم از این موضوعات مختلف امکانش است مسئله اتکار شخصی و عشقی که محقق داره برای دانستن مجهولاتش برای اینکه که تبدیل قبدیل بشد به این معلومات انگیزه ایست برای اینکه کار تحقیقی به طوانت پیشرفت بکنه اما نکته ای که اصولا در سیر تحقیقات امروزی هست دخالت بیشتر اجتماع در امر تحقیق امروز ما در هیچ دارالعلمی نمی بینیم که کار تحقیقی صرفا جنبه شخصی داشته بوشی یک اکیب تحقیق میکنه امر تحقیق اجتماعی امروز بیش از گذشته است یعنی سازمان های تحقیقی بیش از گذشته وجود دارند و نتیجه بهتر وسایل جلب محققینی که منفردن اقدام میکنن امروز فراهمه در علوم نظری چه دست جمعی تحقیق بشه چه فردی مسئله روشن کردن مفهومه و این یه قالب اوقات چیزایی هست که انسان درک میکنه ولی این درک روشن نیست یعنی نمیتونه به دیگری انتقال بده موقعی این عمل انجام بده که مفاهیم برای او به یه صورت تجرید در آمده باشه که این بتوانیم کنیم. سر تعلیم و تربیات یا آموزش بربرش هم در واقع همینه شما یه مفهوم غیر روشنی رو نمیتونید به طرف بفهمانید یعنی موضوع تقریب روشن باشه؟ بله و قلعا که مرحله اول تحقیق در همون موضوع تحقیق روشن کردن مفاهیم. حتی در خود ریاضی خیلی اندیشهای ریاضی از قدیم بوده دانشمندانی بعد آمدن کوشیدن روشن کنن به مشکلاتی برخوردن. مثل ام بوننگوزاری ریاضیات نو از همین جا شروع شد که مشکلی بیجا آمد و کانتور وقتی میاندیشید برای رفع اون مشکل متوجه شد که مشکلی نیست، امر دیگری است و بینچو بوننگوزاری ریاضی ابش شد و تعلیم ریاضی هم به صورت نو درآمد که مفاهیم رو اول اینجا از اعداد مجرد شروع کنن از اعداد وصفی شروع میگن و از شماره در از که در موضوع هر مسئله اول روشن شدن اون مفاهیم مفاهیمی که روشن نیست قابل انتقال به دیگری نیست و این مفاهیم مورد بحث نمیتوناصلن اگر بگیری به این دو فرد. و مسئله دوگم مسئله این است که به طور کلی علوم رو چه جور می ما طبقه بندی کنیم. یکی علوم مجرد است مثل منطق ریاضی و شاید مثلا اون مقدمات فلسفه علمی مورد فلسفی متافیزیک نیست البته. اینا البته چه فردی باشه چه چیپ دسته ای با هم کار کنند این مفاهیم به تجربه محتاج نیست یعنی بیرون احتیاج به تجربه نیست. یعنی تتابق لازم نداره عدم تناقض کافی است. در یه دستگاه ریاضی یه مباحث رو من طوری اکسیومتیزه کردم یعنی بونگ گزاری اصول اولیه رو طوری کردم که با هم متناقض نشد دستگاه علم ریاضی درست میشه اما در فیزیک این کفایت نمی کنه. اگر شما یه اصولی در فیزیک بگذارید که با هم متناقض نباشه ولی با دنیا تجربه خارج نخونه این در فیزیک رد میشه. مشین خیلی از تئوری‌ها در فیزیک مخصوصاً این اواخر برای کوشش وحدت و وجودا در نظریه نسبیت اینشتاین خیلی از پیش‌نیازهای علمی چون با تجربه تطبیق از رد شد رفت اینا هم علوم تجربی هست. البته اصول این علوم امپیریک اصل اطلاع انفورماسیونی نظریه آگاهی که از دیرباز بشر میشناخت اونتاقو فرموله نشده بود در قرن 20 شده شد یه هم است که مشاهده است مثلا یه میزان علمی بیشتر مشاهده است قدیم ایات ریاضی بود در نظر حرکت اجرام که هنوز البته وجود داره ولی علم الهیات علم مشاهده است ابزرواسیون تلسکوپ همون چیز میونه رصدخانه است اسمش هم روش یه علومی هم که علوم طبیعیه است که انسانی نیست که اینجا هر سه این موضوع یعنی مشاهده و تجربه و تجرید انتزاهی هر سه دخالت میکنه اینجاست که مرحله تحقیق رو روشن کرد ولی در این سه مرحله جناب دکتر عتمیزاده چه چیز دیگه‌ای دارید یه موردی صاحب نظر در این سه موردی که اختلاف با هم نداره در علوم تجربی علوم ابزرویشن و علوم نظری مجرد ولی وقتی می رسید به علم انسانی چه از نظر فردی چه از نظر اجتماعی اینجاست که بشه هیچ چیز زیرا که اینجا مفاهیم روشن نیستن و امکان تجربه هم ممکن نیست شما اگر قوانینی برای اجتماع وضع کنید یا چشف کنید کار ندارم شما همینن یه اجتماع مرده گذشته رو از نو زنده کنید ببینید یه بار یه اسکندر و دارا بیان با هم جنگ کنند ببینید مثلا حدوث این جنگ و علت دارش داراش بود یه بار تو از ده رفته این یه تجربه ناپذیر یعنی مسائل توجیه پیش می ناد و این نظریه چالش گرفتاری سر این مرده وقتی میگن موضوع تغییر اشاره میشه که باید کاملا معین و روشن باشه چه از نظر فرد محقق یا از نظر اون کسی که میخواد استفاده از اون تحقیق کنه از همین نظره یعنی چیزی باید باشه که مفاهیمش قبلا روشن شده باشه در علوم انسانی چه فردی و چه اجتماعی چه در روانشناسی فرد چه در سوسیولوژی مفاهیم هنوز درست روشن نیستن یعنی ممکنه مثلا اون دانشمند روانشناس چیزایی رو واقعا درک کرده باشه ولی هنوز این نمیتونه به دیگری تسلیم کنه و واگو گزارش کنه افهام بتونه بکنه این ماده اول تایید رو مفاهیم روشن کنه در نسل خودش وقتی شد این این مقدمه تغییر البته بعد مسئله انتقال این فکر خواهد شد و اینجاست که نظر آیزوتور ها تمیزازه رو من تایید میکنم اینه که بعضی از تحقیق ها اصلا نمیتونه دست جمعی بشه زیرا که از این قبیله هنوز برای خود اون محقق اصلی که میخواد این مطلب رو بعد با همکارانش در میان بگذاره مفاهم برای خودش روشن نیست این اول باید این تحقیق فردی بشه مفاهیم به جنبه که رسید میشون کاری دسته جمعی که اشاره فرمودید که البته حالا خیلی بیشتر توصیف پیدا کرده چرا برای این در گرمیشون مفاهیم برای ما روشن‌تره بله علت این که معمولا الان گروه ها بیشتر کار میکنند برای من تقریبا مشخصه علتش اینه که علوم فعلی کم و بیش مسائل کوچیک رو حل کرده بله. فقط مسائلی هستند که باقی مونده که واقعا احتیاج به مخارج زیاد تشکیلات بزرگ ها داره که غالبا از عهده یک فرد ساخته نیست حتما بایستی یک پشتیبانی داشته باشه هم از مادی یا معنوی یا انسانی بایستی یک پشتیبانی داشته باشه روی این اصل بیشتر شما میبینید که تمایلی هستش که بیشتر گروه ها با هم جنبشن و یا دولت یا مؤسسات ثروتمند سوسی یک موضوعی رو پشتیبانی کنند البته محققین معمولاً شخصا فکر میکنن در اون باره تحقیق بکنن کم و بیش این موضوعی را که تحقیق میخوان درش باره بکنند و یک تئوری براش وضع کردند که حالا باعث در عمل به ثبوت برسه به گوش این اون میرسه و در ضمن این رد به بدردشتن اطلاعات یک مؤسسه خصوصی یا دولت حس میکنه که به این موضوع خیلی محتاجه و نتیجه این موضوع به دردش میخوره اونجاست که اون دولت یا اون مؤسسه خصوصی میره و پولی به این دانشمند یا به این محقق میده و وسایل کارش رو فراهم میکنه اگر نکردند او ممکنه که مدت‌ها طول بکشه و به آخر به نتیجه نرسه و همین جاست که شما می‌بینید الان بیشتر تحقیقات روی موضوع‌هایی میشه که جنبه عملی دارن به بل. که اگر موضوعی فرزن یک موضوعی فرضاً همونطور که شما فرمودید خاص بشه یکی کسی راضی به جغرافیاهای جهنم بره تحقیق بکنه طبعا چون کسی خریدار نداره هیچ کس نمی‌تونه پشتیبانیش بکنه که یک چیز وسیله در اختیارش باشه که به با جهنم بره و از اونجا تحقیقاتش شروع بکنه درباره باره علوم انسانی و اجتماعی امروز تمایل تانسی که وجود داره بر این است که این علوم رو از دو دید مختلف بررسی میکنند یک بررسی های جنرال و کلیست که در مفاهیم و در تجریدات کوهن و گذشته این علوم هست یکی هم حتی مثلا کریمینولوژی رو آمدن یه بخش دیگری بهش اختصاص دادن به نام کریمینولوژی کلینیک آمدن این رو درمانگاهیش کردن یعنی مشاهده ایش کردن خواستن حتی علوم انسانی و اجتماعی رو هم به سوی علوم مشاهده و علوم تجربی هدایت کنند و اساس بررسی ها و تحقیقات به این عنوان هست که علوم انسانی و اجتماعی هم جنبه آماری دقیق جنبه لابراتواری جنبه مشاهده ای و جنبه تجربی داشته بشه با دکتر باقری خواهش می‌کنم اشاره کردیم که دو انگیزه برای تحقیق وجود داره یکی از اینها عبارت از حس کنچ کاویه و دیگری احتیاجه. به نظر میرسه که اگر به این موضوع توجه بکنیم شاید تا اندازهی بتونیم موضوع تحقیق دست جمعی و خصوصی رو روشن بکنیم. به دیگه به نظر میرسه تحقیقاتی دست جمعی که صورت میپذیری که معمولا منشهش از دولت هست، از اجتماع هست، از موسسات خصوصی هست، اون انگیزه دوم رو یعنی اون احتیاج رو داره. که یک نتیجه ازش کشف می و اون رو در کار عملی به کار می برن برای این که موضوع روشن بشه من یک مسئلی از همون کار تبابت خودمون ارائه می براتون می که مریض هایی که ضعف اعصاب دارن به نوروز دارن خیلی فراونن. میگن به عطبای داخلی خیلی مراجعه می کنن این می تونه موضوع تحقیق باشه که ببینیم آیا واقعا مریض هایی که دوچار زعفه اصاب هستن زیادن یا نه به اطبای داخلی مراجعه می کنند یا نه بنابراین ما 500 تا طبیب داخلی رو پیدا می کنیم و مطب اینها رو نگاه می کنیم ببینیم مریض هایی که بهش مراجعه کردن در ظرف فرض کنید یک ماه اینها چند نفرشون تشخیص زعفه اصاب خواهد داشت بعد که این روشن کردیم می توانیم از این نتایج مختلف اولین نتیجه‌ای که می گیریم این هست اگر دیدیم که این مریضها واقعاً 80 درصد 70 درصد این مریض‌ها ضعف اعصاب دارن اولین نتیجه عملی این خواهد بود که بنابر این در برنامه های آموزشی خودمون در تربیت طبیب ما باید تعداد بیشتری متخصص پسیکیاتری و اعصاب و روانی تربیت بکنیم نتیجه دوم ممکنه ازش بگیریم این است که پس در همین اطباء همین مدرسه های که ما داریم در این ها ما مقدار بیشتری پسیکیاتری مربوط به اعصاب و روانی به شاگردها درسی برای اینکه در آینده اینها بیشتر احتیاج دارن این طرز انطباق اون تحقیق است که از لحاظ احتیاج یک نفر محقق ممکن بکنه نتیجه که از بحث امشب می‌تونیم بگیریم این است که درباره تعیین موضوع تحقیق یعنی تعیین مفاهیم شرط اساسی موفقیت در تحقیق است یعنی ناچار باید در هر رشته از علوم که باشد این موضوع تحقیق و مفاهیم مربوط به تحقیق معلوم بشود یک ست مفاهیم هم همینطوری که اشاره شد و الان خلاصه ای رو مجددا بیان می کنیم یک ست از این مفاهیم معینند در مسائل مربوط به حیعت، مسائل مربوط به فیزیک مسائل مربوط به علوم طبیعی دیگر مفاهیم معین در بیولوژی ما زیاد راجع به هر مفهومی، هر عنوانی که میخوایم تحقیق بکنیم زیاد تردید نداریم در مسائل مربوط به ریاضی هم باز تردیدی نداریم اما ای که بیشتر جای تردید رو ایجاد میکند راجع به علوم انسانی و اجتماعی است بنابراین برای محقق علوم انسانی و اجتماعی تعیین مفاهیم و تعیین موضوعات تحقیق مشکلتر هست تا در علوم مجرده و علوم تجربی و یا علوم ای که اشاره شد این مطلب ابتدایی که عنوان کردیم مبنی بر این که ارکان سلاسی تحقیق عبارتند از پرسونل تحقیق که اشاره شد و بعد رکن دوم به عنوان موضوع تحقیق ایجاب میکند که ما در برنامه آیندهمون راجع به عنصر سوم یعنی روش تحقیق در علوم مختلفه هم بحث بکنیم چون وقت نزدیک به اتمام است همسخنی به آیان دکتر هشترودی، دکتر هاتمیزاده و دکتر باغری عرایزم رو خاتمه میدهم تا برنامه آینده برنامه قرن بیستم و افکار نو